بسم الله الرحمن الرحيم اجتهاد وآخرين بحث از كتابات مفيدة ورقات وأما الاجتهاد فهو باب للوصع في بلوغ القراءة اجتهاد كذا لغتهم تلاش كردن حست أما ببيني تعريف اصطلاح شو كي ابتداء درس وأما الاجتهاد فهو باب للوصع في بلوغ القراءة مي مي اجتهاد يعني بخشیدن تلاش تمام تلاش در رسیدن به هدف بغل الوسعی بخشیدن تمام توان و قدرت با بازمه یعنی توان یعنی قدرت بخشیدن تمام وسعت توان قدرت در رسیدن به غرض هدف المجتهد الکانه کامل الاجتهاد فی الاجتهاد مجتهد اگر کامل الاله بود در اجتهاد یعنی ابزار اجتهاد و داشت یعنی مجتهد بود تمام alat اجتهاد و داشت قبلا هم مختصرا بیان کرد فالمجتهد الکانه کامل الاجتهاد فی الاجتهاد اگر مجتهد کامل الاله بود در اجتهاد مانند امام شافعی امام مالک امام ابو حنیفه امام احمد صفیان سوری و وفقه های دیگه ای که نمودند ابن حاس و و و فقهای دیگر میگه فالمجتهد امکان کامل الاله فی الاجتهاد اگر مجتهد کامل الاله بود تمام ابزار اجتهاد داشت شرایطی رو که در اجتهاد نیاز هستن اون آله و ابزارایی رو که شخص وقت داشته باشد تا مجتهد باشد اینا رو داشت اجتهد, داشت فإن اجتهد في فأصابه أجران. أجر اجتهاد فروعی فاصاب فله اجر اگر اجتهاد کرد در فروع در مسائل فقهی فاصاب و نظریش درست درآمد اصابت کرد فله اجر آن دو پا داشت و اجتهد و اخطا فله اجر واحد و اما اگر اجتهاد کرد و به خطا رفت یک صاب دارد منظور از اصابه این است که اجتهادش موافق با حکمی باشد که در واقع هست و من هم من قال بعضی از اصولیون گفتهاند یعنی نظریه دوومی وجود دارد در این رابطه در اون رابطه با نظریه قبلی که گفته بود اگر مجتهد کامل الاله بود و اجتهاد کرده بود اگر نظریش درست درومد دو اجر دارد و اگر به خطا رفت یک اجر اون نظریه گروهی از فقها بود نظریه گروهی از فقها همون بود ومنهم من قال و بعضي از علماء بفتان يعني نظريه دو كل مجتهد في الفروع مصيب هر مجتهدي در فروع مصيب هز وقولش تروس وإن قولي ديگر از امام ابو و بعضي از شعفئيه و بعضي از معلكيه و بعضي از متكلمين هز شون يكي ازاقوال امامهم فهم أز اول بود ابو که صالح فوزان در شرحش بر ورقات آورده است یعنی قولی رو به امام ابو و نامبردگان نسبت می‌دهد و من قال كل مجتهد في الفروع مصیب نظریه ای و بعض اصولیون و ها گفتند که هر مجتهدی در فروع سخنش درست هست خطا نیست مصیب است ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلاميه مصيب بعدن ادامه میدیم جایز نیست که گفته بشه هر مجتهدی در اصول کلامی در عقیده هم تمام سخنانش مصیب است چرا علت بیاره میگه لان ذلك يؤدي الى تصویب اهل البلاله من النصار والمجوس والكفار والملحين اگر این نظریه رو داده باشیم که هر مشتهدی در اصول کلامی هم سخنش درست است اون موقع نتیجه این میشه که باید درست بدونیم سخن گمراهانی رو از نصارا و مجوس و کفار و ملحدین رو چون اینا در رابطه با کلام نظریه دادهاند و دلیل من قاله اما دلیل اونایی که میگن لیسه کل مجتهدین فی الفروعی مصیبا هر مجتهدی در فروع مصیب نیست دلیلشون چه ابتدا آورده بود در رابطه با فروع دو نظریه آورد یک نظریه آلانی که میگفتند در فروع مجتهد یا مصیب هست یا مخته ولی چنین نیست که سخن تمام مجتهدین مصیب باشد یعنی در مسئله اگر یکی گفت این مسئله چنین است و دیگری گفت چنان قول یکی درست است و بال دیگری خطا مثلا در ها یکی میگد این حلال است و دیگری با توجه به اجتهاد میگوید حرام قول یکی میگه درست است حالا میاره دلیل این گروه اول رو که میگویند چرا میگویند مجتهد در من مجتهدین در فرو سخنشون مصیب نیست بلکه بعضی‌ها مخته هستند دلیل چون میگه چی است و دلیل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصیبان دلیل کسانی که هر مجتهدی در فروع مسائل فقهی مصیب نیست قوله صلی الله علیه و سلام این سخن پیامبر گرامی اسلام است این حدیث است من اجتهد فاصاب فله اجران هر اجتهاد کرد و سخنش به سواب رفت درست رفت فله اجران دو پاداش دارد و من اجتهاد و اخطار فله اجر واحد و هرکس اجتهاد کرد و در اجتهادش خطا کرد فله اجر واحد یک اجر دارد و این حدیث به صراحت نذیت که مشتهد میتونه قولش درست باشه و میتونه خطا باشه. این حدیث به صراحت میگه که مشتهد قولش میتونه درست باشه و میتونه خطا باشه. وگرنه معنا نداشته. اصلا دیگه خیلی سریع. ووجه الدلالة وجه الدلالة ووجه الدليل وجه دليل الدلال الحديث مقتل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارته في عامل قرامي الإسلام قال المجتهد رو بخطاء دان الساس وصوابه أخرى وباري ديگر صواب يعني في عامل الحديث ما تشكر كان قالت موشته میتونه خطابک در نظریش درست باشه و میتونه خطا باشه پس وجه استدلال از این حدیث این هست والله سبحانه و اعلم و الله سبحانه و تعالی اعلم تر آگاه تر پس منظور از اصول کلامی مسائل اقیده هستند که منسوب به علم کلام هستند که متکلمین اونارو در اصول دین شیوه شون رو پیدا کردن درو شد بحث کردن تا این کار کتاب ورقات تمام می شود امیدوارم الله تعالی این عمل رو از ما بپذیرد و در پرونده اعمال قرار دهد و قسمتی از گناهان را به وسیله این کار بیامورزت مرفق و پیوست باشید